صبح شما به خیر باشه بینندگان عزیز خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم فکر کنم که گفتگوی جذاب و دیدنی رو در این بخش از برنامه امروز صبح خبر داشته باشیم و بتونیم تقدیم شما عزیزان بکنیم خدمت شما هرس کنم که بحث های مربوط به افاف و اجاب این خیلی در حوزه های مختلف مطرح هست در خبرها داشتیم در مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون فرهنگی به صورت مرتفع این موضوع رو دنبال می‌کنن هم روز سه‌شنبه در جلسه علنی سوالی از وزیر محترم کشور در این بار مطرح شد و کارت زردی که نمایندگان به آقای رحمانی فضلی دادند و موضوعات مرتبط با اون واکنشی که دولت نسبت به اون نشون دادن از این دست مسائل زیاد داریم در خبر بازم براتون خوندم از بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد امروز قرار هستش که در همین باره درباره موضوعات مرتبط با افاف و حجاب گفتگو رو تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم جناب آقای علی اکبر رایفی پور از مدرسین دانشگاه و از کارشناسان فرهنگی مهمان برنامه امروز ما هستند که خدمتشون عرض سلام و صبح بخیر دارم. هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز امیدوارم که صبح خوبی شروع کرد خیلی متشکر ممنون که در برنامه صبح خبر حضور پیدا کردید اگر که موافق باشید ما برای بررسی موضوع افاف و اجاب یه قدر به عقب برگردیم و ببینیم که از نظر جنابالی ریشه این مباحث و ریشه این اتفاقات در کجا هست خب بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما عرض بکنم که ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که خیلی عمدتا یعنی بهترین طور بگم. معلول ها می به جای علت ها هلت. و البته من نمیخوام یه پو درواقع روشن فکرانه برای خودم بگیرم بگم آقا 20 سال طول میکشه ماجرا رو حل کردن رو نمی این بحث نه واقعا اینطور هم نیست. اما تا ما علت ها رو نتونی برطرفکنیم معلول ها کمماکان جای خود باقیه یعنی شما فرض بکنید سوار خود خودتون هستین سوار ماشینتون نشستید و یه صدایی توی ماشینتون هست که معممولا همه راننده ها اذیت میشن از صدای ماشینشون. یعنی بیشتر از حالت عادی برای خود راننده اذیت کنه و صاحب ماشین آزار برسونه حالا مثلا چون این چرخ مشکل پیدا کرد این صدای وحشت داره که راستی که شما مشکل پیدا کرد چرختون مشکل پیدا کرد ممکن هستن یه حادثه‌ای هم برای شما به وجود بیاره شما میتونید این صدا رو و اون آزاری که به شما می رسونه رو با کردن پنبه‌ها در گوش شریف حلش بکنید خب صدا حل میشه اما مشکل کماکان باقیه ما اعتقاد دارم سال های سال نخواستیم این مسئله رو ببینیم. حالا که دیگه این چرخ به لنگ زدن افتاده و دیگه داره نمود داره بروز داره و دیگه اصلا این پنبه اثرگذاری نداره و به تکان‌های شدید تو ماشین تبدیل شده حالا به فکر افتادیم که یه کاری بکنیم. بحث هجاب و بحث اصلا بالاتر از اون من می‌خوام بگم افاف خب بلاخره افت افت در پوشش میشه حالا اون چیزی که تحت عنوان هجاب از اشیاد میکنیم ما بلا افت در کلام افت در رفتار افت در تفکر حتی که هیچ کس خبر نداره شما خودتون دارید فکر میکنید کسی خبر نداره با خبر نیستش افت در تفکر اینها باید اول اینها بررسی بشه شاید بر بعضی موقع من خب سخنرانی برخی از عزیزان و همکاران خودمون رو شنیدم که صحبت ص می‌نم بعضا مثلا به پارادوکس‌هایی هم می‌رسن بله برایش معتقدم که همه اینا توی پازل قابل حل و جمعه خب اگر می‌بینیم که حالا مثلا بی غیرتی هم داره مشاهده میشه این کاملا مرتبط با همون بی عفتی حالا بی افتی در پوشه شده هجاب رو همین ما زومیم این علت‌های دیگری داره که در واقع باید این معلول ما ببینیم در اون معلول چه چی چیزهایی ببینید من یک نگاه قرآنی رو می‌خوام داشته باشم به این مسئله. وقتی حضرت آدم و هوا علیه مسلم یه ترک اولایی میکنن حالا فعصا آدم اسم شهر چه میکنم بگذاریم بگذاریم وقتی این کار انجام میشه اولین پاسخی که خداوند به این, دو... به این دو میده چیه؟ قبل از حبوط قبل از اخراج پوشش رو ازشون میگه این نگاه قرآن خیلی نگاه عمیق و دقیقه هیچ, هیچ وقت به این ما فکر نکردیم چرا باید اصلا به این مسئله پرداخته بشه؟ حالا این دو نفر اینجا بودن اخراج شدن قالح به تو ها برید از اینجا بیرون چرا باید خداوند میفرماد اول پوشششو ازشون گرفتیم عورت هاشون آشکار شد این نگاه قرآن ها نگاه تورات و انجیل و اینها نیست چون در کتاب مقدس که به با من بایبل حالا هولی بایبل ازش یاد می و اهل کتاب عنوان کتاب مقدس میشناسن میگه که اینها از اول برهنه بودند بعد از که به سمت میوه یا اون سیبه گاز زده رفتن که حالا نمادی هم شده برای خودش اون سیبر رفتن گاز زدن و خوردن تازه فهمیدن که اوریانه یعنی قبلش هم به بودند اوریان بودند حالا فهمیدن که اوریانه نگاه قرآن این نیست نگاه قرآن یه از اول شما علامه بودید گولتون نزنن و علم الانسان ما لم یعلم و علم الادم اسماع شما علامه بودید اصلا شما مدرس دانشگاه بودید برای فرشته ها خدا از عزت آدم خود میگه به درس یاد بده اونطور بحثی که وجود داره خداوند اینجا اینجا میفهمد نخیر آگاه بودن دانشمند بودن علامه بودن و نکته که وجود داره اینه که قرآن بحث پوشش رو سوای بحث علم داشتن به بحث تربیت داشتن مرتبط می‌کنه. ببینید یه ای هست شاید برای خیلی از بینندگان عزیز ما و حتی الان خصوص بهتر بگم برای جوانها یه شبهه باشه ببینید. ما یه بحث تعلیم داریم یا بحث تربیت؟ یه آموزش و پرورش. ما دنبال این نیستیم که انیشتین درست بکنیم که در اوج مثلا علم و ساینتیزم بیاد بمب اتم درس کنه. یا این بمب‌های شیمیایی که ساخته شده بالاخره یک دکترای شیمی، مهندس شیمی نشسته یک کار کرده دیگه درسته؟ تربیتی که مهم مهمه. توی قرآن بیشتر از اون که بحث تعلیم مهم باشه، بحث تربیته. خدا اصلا اسم خودش رو می‌گذاره رب. فَتَلَقَّى من رب بهی كَلِمَةً و زبطلا ابراهیم رب به کلمات یعنی هر لحظه انسانی که آموزش دیده تعلیم شد، داده شده بعد حالا نق... نق... بحث تربیت رو زمین باید این بحث تربیتی پیش بیاد ببینید وقتی حضرت آدم این ترک اولا رو انجام میده خدا این رو نشونه حالا بلا تشبیه بگیم حالا پیامبر خداست اما چون عبارات قرآنی دیگه تعارفی نده میگه که تربیت تو مشکل داره و تو تربیت بشی بر روی زمین وقتی توبه میکنه باز میگرده سوماج تباه اورا میگه که حالا شیشتم مال خودم شدی خدا میفرماد. یعنی این نکته جالب بگم مقام حضرت آدم پس از ترک اولا و توبه از قبل از توبه مقامش بالاتر میره ها. یعنی تربیت شدن و به سمت تعالی رفتن مد نظر. حوزه پوشش حوزه تربیتیه. ببینید ما خیلی وقتا از علم در مورد یک مسئله داریم. خیلی سو که مواد مخدر مواد مخدر اصلا مصرف میکنن انواعش علم بر مضر بودنش دارن. علم دارن و کی که نادون کراک بده شیشه بده خود این کسایی که استفاده میکن میدونن بده خیلی از اینا صحبت کردم بعد اون تو مشکل سر چیه مشکل سر اینه که حالا من عذرم میخوام از این بزرگان اما خب چون بازم باید عبارت بود بی عرض بکنیم اینجا یه علم داریم یه عقل داریم میگه قران اقلون افلای عقلون میگه علم دارن اما یه عقلشون رو به کار نمینذان که این علم چه درد خورد هیچ شما برید بپرسید هیچ خانمی دوست نداره نگاه ج... صرف جنسی بهش باشه صرفا فقط نگاه جنسی بهشون بشه هیچ خونی دوست ندن حتی کسایی که دوچار مثلا حتی سر رفتارهای خیلی جدی هم هستن دوست دارن دیگر... دیگر زن بودنشون دیده بشه انسان بودنشون اصلا دیده بشه خب اما چرا این اتفاق میفته علم بر این دارن اما دوچاره مشکل میشن و اقلانیت رو درست استفاده ازش نمیکنن یا یک نکته دیگه من عرض بکنم وقتی خدا میخواد پنج تن رو جدا بکن بگی این پنج تا اصابهشون از همه فهم بکن با همه فرق بکن متفاوت اینا رو زیر چی میبره؟ زیر عبا زیر پوشش میبره و در حدیث کسا داریم که حضرت رسول چهار تن دیگر رو جمع میکنه و جبرائیل هم میاد جبرائیل آمل وحی آن پنج تن هم اهل بیت قرآن و اهل بیت اینی تارک و فیکم و سغلین. یعنی سغلین زیر یک پوشش تعریف میشن. در روز مباهله وقتی حضرت حاضر میشه به اون مسیحیای نجران شما میبینید که تمام مردم عذابن خب یه اتفاق عظیم قرعه بود گفته بیان به چشم خودشون ببینن قرعه از آسمون آتیش بباره زمین دهن باز بکنه قرون نفرین کنن هم دیگه فبتعل تو اون روز وقتی حضرت میخواد جدا بکنه که بفهمونه ما فرق میکنیم به حضرت سلمان میفرماود که برو اوای منو بنوز درخت تا در شاخه های درخت میندازه که سایه ای بعد زیرش رو جارو بکن بعد پنجتن آلابا میرن، پنجتن آلابا خودم دارم میگم، میرن زیر آن کسا قرار میگرن، زیر آن عبا قرار میگرن حالا بمانت خود کسا در قرآن پنج مرتبه تکرار شده یعنی اشارات خیلی ویژه و جالب وجود داره پس بحث پوشش سوای این مباحثی که ما فکر میکنیم که خدمت شما آرز بشم حالا یک رفتار یک مثلا مثل سیگار کشتن یکم داری مثلا, مثلا بعد اجابی نه نیست. نه متفاوت ماهیتا تفاوت داره بحث پوشش بحثی که انسان رو از حیوان جدا میکنه آدم اگر میخواهی آدم باشی باید پوشش داشته باشی اگر نه میخواهی به حرف من خدا گوش نکنی تابه قریزت باشی تابه نفست باشی حوث کرده اون میورو بخوری تو از غوزه اشرف مخلوقات به سمت الالله رفتن داره خارج میشی میخواهی زندگی حیوانی داشته باشی برو بیرون فلاسا به این هم نیازی نداری شما ببینید تو جوام دیگر هم همینطوره یعنی هرچی بشر به سمت بی خدایی پیشرفته بی تر شده بی تر شده خواسته بدن خودشو عرضه بکنه تفکر از این ماتریالیستر ما دیگر آیانه تر بگه آقا تفکرات من رو الزام نبین فقط بیا تن من رو بین بدن من رو بین و پوشش من رو ببین. این یک نکته است نکته دیگه ای که من حالا نقدم داره اماا بیشتر بر به عنوان چهره منتقد میشناسن خب اعتقاد دارم اگر خودمون, خودمون رو نقد نکنیم منصفانه. این باعث میشه که مردم نقده های خیلی بدتر و مقرزانر از جای دیگه گوش کنه. ببینید ما مسئله زن برای اون تعریف نشده. ماه تا بحث هجاب پیش میاد شما راست حسینی شده چی میفتید؟ حجابی بی بیجابی خانم میفتیم که حالا اصلا پوش مناسب بیام نده. چرا یه آقا نمیفتیم؟ آخه就是 سوالای من بود که آیا حجاب و عفاف فقط مختص خانم‌هاس یا واقعاً؟ قطعا اینطور این نیست. قطعا اینطور نیستش، خب؟ منظور آقایان بعد حجاب زیرش اومد. خب بده دیگه غلطه. ببین چرا؟ به خاطر از زن و مرد با هم فرقی ندونم تو نگاه من. ما. ما دایاشو داریم ما. میگیم زن و مرد هم متفاوته. هر کس هم گفت زن و مرد با هم یکیه من تیرون رو اونجا اعلام می‌کنم. محترم بوشون هر چیزی که دلش می‌خواد مناظره کنه. خب برای چی منم چه اعتقادی ندارم؟ به خاطر اینکه ببینید زن و مرد تفاوت‌های بسیار زیادی دارن که وقتی کنار هم قرار می‌گیرن یک در واقع تکامل شکل می‌گیره خب ما مردها بیشتر قرار ببینید اصلا انسان قرار محل تجلی صفات خدا باشه دیگه هر چی صفات خدا بهتر تجلی کنه اون انسان سیر الاله بهتر رفته بعضی موقع این تجلی انقدر خوبه که بقیه مردم قاطی می‌کنن میان یعنی خدای فلانی زنی که در مورد حضرت ایستا داشتن زنی که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن با بهترین عبارت شاید شهریار گفتن که نه بشر توانمش گفتن نه خدا توانمش خون ببینید این تجلی صفات خدا در انسانی که کامل میشه و خلیفت الله میشه خب اینو من میخوام بوش دست بذارم که بریم به واسه افا افاف و هجام نگاه بکنید ما مردها بیشتر محل تجلی صفات جلال خدا هستیم نگاه های مردانه هم همین رو قشنگ برمی تا بعد. خانم هم بیشتر این بیشتر رو نقل میکنن بعدن داستان بر ما درست نکنن آره. بیشتر محل تجلی صفات جمال خدا شما خدا رو میخواید صدا بکنید با کدام صفاتش صدا کنید؟ همه با جمال خدا رو صدا میان یا ارحم الراحمین یا ستار ال ایوب بعد این طرف هم شما میبینید که بزرگان رو میگن از دامن زن مرد به مراج به زیر پای مادران است اینکه که افت و حجاب تو زهن متبادر میکنه بحث زنو یه رویشه های این هم داره خب زنی که س... محل تجلی صفات جمال باشه مثل مهربان بودن خدا رزاق بودن خدا ستارالویو بودن خدا و مردی که صفات جلال مثل الله اکبر جبار بودن قیور بودن قهار بودن اینها که کنار همدیگه قرار میگیرن واحد فقط اوه هیچ ک تک مانند خدا بشید. ما هم قراره توی این به هم رسیدن به سکون برسیم. لتسکون و نکته ها. که تو قرآن وجود داره اینه که قرآن می فرماد لتسکون و ها, ها چیه برای مؤنث برمیگرده. یعنی به ما مردو داره میگه. میگه زن مایه آرام شدن شماست و یعنی شقاوت در شما بالاتره. شما یه نگاهی بکنید امده عمده... شخیم بکنیم سرسبب ارازل او باشه تاریخو شما بررسی بکنید مثل چه بدونم شمر و یزید و بگیرید بیاید تا چنگیز خان و هیتلر و فلان اینا تن از ما آقایون بله در آقا هستن چرا؟ چون احتمال شقاوت در ما بیشتره حتی خانوم خانم‌هایی هم که درشون شقاوت آشکار شده اول ادو مرده رو دار مثل کسی کسی میسه هندجه جگر خوراکم. آ تو وسط میدان جنگ چیکار می‌کنی؟ که بیای تنی پاره کنی و جگری بیرون بکشی و به دندان بکشی. این کار عجیب غریبه. سربریدن‌هایی که امروز شما تو عراق دارید می‌بینید، عمدتاً می‌ینه یعنی پای مرد وسطی. نه فقط توی اینجا یه چون آقا چون خانم‌ها تو خونن اسلامی اینجا نخیر این طور نیست. تو کشور غربی هم نگاه بکنید اینطوری. خب حالا این زن شأنش اینطوریه. من یه سوال دارم. ما که امروز نگران عفاف و دختر خانم ما با آقا پسر ما تو مدرسه ما چه فربلان داشتن؟ تو دروسی که یاد گرفتن یک دونه کتاب به بنده بگید خب که آقایون و خانم ها تا روزی که دیپلم گرفتن با هم کتابشون فرق داشت بسم الله من خودم راهنماتون می‌کنم کتاب حرفه و فن تنها کتابیه بخش بش که به خانم میگه سوزن چیست به آقایی میگه پیچگوشتی یا به عبارت سهته پیچ گشتی چیست آیا ما الان حل شد دیگه ماشیم ما بفهم چیه سوزن چیه به تعریفی جالبیم سوزن میله است آن تیز از آن نخرد میکنن ببین وقتی ما زن رو اینطور تعریف کردیم و هیچ فرقی با مرد نداش رفتارش هم مثل مرد میشه اینه مرد میشه بچه‌ها نوراث بد بشیم این نسخه ای که خودمون نوشتیم این برگی سفید دستمونه شما روی ناسزا بنویسید ناسزا میخونید روی این حرف خوب بنویسید حرف خوب میشنوید خب در این هیچ شکی وجود نداره متاسفانه من اینها رو اصلی میدونم که چی دختر خانم ما تعریف نشده بذار ببین من ادعا میکنم اینجا کم کسی تا حالا تو برهه زمانی بعد نسبت زمانی گرفت به اندازه من تو دانشگاه و شهرای مختلف میچرخم بسیار کسی رو سفرم خیلی از رو میرم الان دیگه شهرای بزرگی رفتم رسید به شهرهای 5000 نفر و 78000 نفر دارم میرم یعنی به دفترم گفتم به اینجور شهرها برنامه بده دوست دارم با مردم کشورم در ارتباط باشم با خیلی از مستبصرین خارجی در ارتباطم خانم هایی که تا 40 سال با ترین و زننده ترین رفتارها رو داشتن، شیعه شدن، امروز حجاب اختیار کردن، یعنی به قول من از وسط میدون جنگ دارم میام. خب بسیاری از خانم ها و دختر خانم ها رو من دید بنده دیدم که با این می که ما مشخص می‌کنیم با تاجان، تو سخنرانی می میشینه. خب اما وقتی با باتون با صحبت میکنن می بینید اهل بیتن. چند تا این رو شما حرم امروز می‌بینید. چرا تو هیئت چیه؟ آها، وقتی خب این اینطور تعریف شده بنده خدا. این میگه خب منم مردم. ببینید <تصفيق> رفتار. این اصلا هیچگاه براش تعریف نشده تو باید محل تجلی صفات رحمت خدا باشی. تو باید مادر باشی. اصلا دلیل اینکه مادری همینه. دلیل اینکه خالق روی زمین شما اینه. شما یک موجود رو خلق می‌کنی. خب؟ اما این براش تعریف نشده. فلز میاد خودش رو در چی می‌بینه؟ برای اینکه بتونه خوب رقابت کنه در مردان جلوه کردن خودشونشون میده. من از خدمت شما از دان ارز بکنم تا مطلب جفته امروز در امریکا شما باید سرچو کنید یه اینترنت دم دست همه خانوم هایی که خانه دارن پوز میدن وقتی ازشون میپرسن مثلا طرف میگه فلان رمان من خوندم داره ورد دوستش تعریف میکنه خانم میگه چطور وقت کردی؟ میگه آخه من که سرکار نمیرم که پوز میده با این به چه دلیل؟ دو دلیل. یک شوهرم داره نیاز به کار بنده نداره. دو شوهرم دو داره. میبشین تو خونه خوب در تفرید دوستاری بکن اه من میرم پول میرم شما خرج بکن درسته؟ اینشون نشانه علاقه دیگه که شما برید بینید تو دنیا اقتصادی شما ایران نبینید هنوز گذاره اقتصادی تو ایران اینجوری نگرفته که دنیا رو قشنگ همه چه مانی ببینیم همه چه یه اس خط خورده ببینیم اینطوری نشده هنوز شما میرید تو این کشور پدر بچه 30 سال شده تو خونه است دوه که این بچه رفاه داشته باشه صبحانه نهار شام لباس هر تفریح مدنظره خودشو داشته باشه خب تو اونجا اینجوری نیست تو اونجا آقای مد با یه خانومی درخواست ازدواج با دیگه میدن بعد میگه که تو این رابطه ما یک بهرهوری جنسی از هم می‌خوایم داشت همونقدر که من مرد بهرهوری دارم توی زنم بهرهوری منم باید برم کار کنم شما باید بری کار کنید حتی جالب خانوم‌هایی که کار نمی‌کنن اگه یا ایه کار نکنه تو طلاق دارن اطلاقش می‌دیم بیا برای چی منم وقت کار بکنم شما ببینید بعد تعاریف بد این طرفو ببینید تعاریف بد این طرف میشه چی این که شما فکر می‌کنید خانم که توی خونه مثلا نشسته بعد به بدبخ رو بدبخودانه بیچاره ناخیر این خانم بره کلاس شنا این خانم بره تفریح این خانم با دوستاش بره مسافرت این خانم بره کلاس قرآن این خانم بره فلان همایشو شرکت کنه منتهی درست بگی لیوان آب شما اینجوری گذاشید میتونم ازش استفاده کنم یه مثالی بزنم بفرمایید کلا من معروفم میگه لیوان آب جل دستم نباشه نمیتونم سخنرانی کنم 50 درصد مثلا با لیوان آب لیوانا رو بر چی گذاشتید به خاطر این مارک صبح باخبرش حالا افتابم زیاد خورده رنگش رفته هم نیست درسته یا به خاطر چینیش که نیستش میترسی بشقابت چینی برد بزنی به خاطر آب توشه محتوا مهم بوده حالا فرض بکنید همین بالا یهو ساختاری ناوین برد قوام اینا بین بره اونی که نگهش داشته به اون جمال این جلال جلال از بین بره چی میشه اینا میرزه رو زمین لگدمال میشه به لجن کشیده میشه کثیف میشه و همون بهتر که از اول نباشه ببین قران چقدر قشنگه اسلام چقدر قشنگ دو تا کرده میگه تو زن مظهر زیبایی هستی مظهر محبت هستی مظهر عاطفه هستی مظهر جمال الهی هستی خیلی ها دوست به این رجال قوام این علم تو یه مرد نگهش دار و تعریف کرده و بدون این مرد اگر درست نگهش داری میشی لیوان آب و ارزش پیدا میکنی به عنوان که محمل آب هستی زرف این مظروف هستی لتس کنو اله ها که هویت بگیر به وسیله این زن خب این نگاه به زن من نمیخواب چون فرصت کمه دیگه و اگر شاید ما تو بعضی از دانشگاه میریم و همین هجاب رو دو جلسه کرد. خب در واقع سلسله سال ماطی پشت سرم باید ادامه پیدا کرد این نگاه بزن وجود نداره این خانومه چون میبینه تو دانشگاه این آقای درس خونه تو دانشگاه باید بره یه سن بره بیاد ولا اینجور چیزا س اینا تفاوت دارن ما مرد و کلی نگریم جز جزئی نگرن شما قطا با ما مردها هستن میبینید با همسرمون سر مشکل بام کنیم سرییهست نگاههایی که اون جزئی جزیه نگاهکن ما کلان نگاه میکنیم چ میرییه مهمونی میریید حال یه شخلا باخواانوا بکنیم سرسی. یه مهمونی می, با بکنیم مهمونی می بر میگرده از ما مردم پررسند بود که آقاین بپرسن این خونه چجوری بود یه ما رو دو طبقه بود 16 کار کرده بودن و دیگه نهایتاً خیلی دیگه خود رو بکشیم ساختارها رو می بینیم اما خانم ها شما می بینید تا چ مارکت السی دی هم در بودن این بهبنی ای خدا نکرده فضول بودن رفتار نیست نه او جزئی نگره شما صبح میره بچه میره خونه بیرون میره مدرسه میره دانشگاه بر یه خورده ناراحته مادر میفهمه امکان نداره بهتون کتمان کنی پدر توجه نمیشه چون مادر تا خم و خطای صورت بچهشو میدونه نگاه تربیتی دسته اینه این نگاه به زن این نگاه به مادر بعد ما بگیم هر دوتان یکی هست حالا نگاه کلی خوبه یا نگاه جزئی هر دوتا باید کنار هم دیگه قرار بدین. آقا ساختارهای ام. اصلی این ساختارهای اصلی و مهم و بزرگ رو مرد تاییم میکنه خب آقا دخترم این شهر درس نخون پسرم این کار رو انتخاب بکنیم اما جوزی ها دست زنه اصلا مرد توانهشو نداره اصلا متوجه نمیشه ایرادی نداره ها اینا خوبه برای هر دو خوبه این به ببینید بد بودن و ما هممون ناقصیم قرار با کنار هم دیگه در واقع کامل اصل ماجرای نبود افاف و هجاب از تعریف نشدن زن ریشه بگیره و از این کسا زن نبوده کیه. دوست مرد مردار در بید چون زن یک مرد تعریف شد. جناب آی سالک، حجت رسنا و المسلمین سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اسپان در مجلس پشت خط تلفنی برنامه صبح خبر هستند. جناب آی سالک، سلام صبح شما بخیر سلام علیکم، صبح شما و همه بینندگان عزیز به و سلامتی انش تشکر می کنم که در این گفتگو تلفنی شرکت کردید من میخواستم از جناب ارزیابیتون رو از جلسه روز سه‌شنبه مجلس و رأی نمایندگان و کارت زرد نمایندگان به وزیر کشور بپرسم دیدم امروز در روزنامه ها از قول آقای دکتر آشنا نوشتند که مشکل احفاف و حجاب با کارت زرد حل نمیشه واکنش مجلس و پاسخ مجلس نسبت به این موضوع چی هست بسم الله الرحمن الرحیم یکی از وظائف مهم نمایندگان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر حسن اجرای قانون هست و عملکرد مدیران کشور این قدرت نظارت یکی از رسالت های نمایندگانه نمایندگان بر اساس ضوابط قانونی سوالی رو پیرامون نوع لباس هایی که امروز در بازار مطرح هست از وزیر محترم کشور که همه هنگ 24 دستگاه قانون افاف و هجاب هستند انجام گرفت این سؤالات سبب شد که در کمسون فرهنگی مورد بحث قرار بگیره وزیر محترم کشور آیه رحمانی فضلی تشریف آوردند در کمسیون و اونجا پاسخ سوال کنندگان رو مفصل دادند. منتهاش سوال کنندگان به مجموعه پاسخهای وزیر قانع نشدند. طبق آین نامه داخلی مجلس بعد از طرح سوال و پاسخ سوال این نماینده است که باید بگید قانع شدم یا نشدم. وقتی گفت قانع نشدم، به طور طبیعی سوال میره به سحن علنی مجلس و دیروز، سه شنبه سوال متحری و آقای موسوی لاردانی به سحن علنی مجلس آمد. اونجا بعد از گزارش سخنگوی کمسیون و توضیح مسئله که چه اتفاقاتی در کمسیون افتاده است، سوال کننده سوالش رو مطرح میکنه و بعد وزیر پاسخ میده. مجموعاً در روز سه پاسخهای وزیر برای سوال کننده قام کننده نبود، بر این اساس طبقه این نامه باید رعی گیری کنند. رأیی که گرفتن مجلس هم اعلام عدم تناعت کرد در با رأی خودش. این خلاصه سیر سوری جلسه سوال بوده. اما محتوای سوال پیرامون چند مطلب بود. مطلب اول نوع لباس های ساپورتی که امروز در صحنه بازار مطرح هست ارجل اخیره او دستگاه اسکای زی زیرف ساعت سوالیتو که این مطرح بود سوال. سوال دوم هم اجرای قانون اضافه هجاب بود و علت این که یک دقت بیشتری و اعمال قدرت بیشتری نیست این سوال مطرح شد. این مجموعه سوالات بود که خب مورد توجه قرار گرفت. آقای فضیهت رحمانی فضلی وزیر محترم کشور توضیحات مفصلی دادند و آمار و ارقامی که فعالیتهای خودشون را انجام دادن اونجا اعلام کردند و خب به بیانشون در ارتباط با عمل که در قبال قانون و مسائل داشتند خوب بود منتاش تصاویری را که به اصطلاح سوال کننده مطرح کرد و بعد بحثایی که رد و بدل شد سبب شد که قانع نشن این خلاصه قضیه روز سشنبه بود اما جمله که آقای آشنا شما نقل کردید از روزنامه ها حرفیست که قابل بحث و بررسیفت این زمین. اب عادی دارد یک بودش این هستش که بله با کارت زد به وزیر نمیشه یه بیران دوباری و بد اینها رو حل کرد اما اونی که مطرح هست این هستش که دستگاه های دولتی باید که 24 دستگاه هستند، باید قانون رو پیاده کنن حداقل تو دستگاه های اجرایی. اگر بخش اعظم از این مسئله در دستگاه های اجرایی پیاده بشه بیش از شاید پنجاه درصد از این موضوعات حل میشه. گیره یک مسئله در اختیار اجراییات و مدیران اجرایی. خیلی متشکرم آقای سالک ممنون از توضیحات کاملتون. متشکر. تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. یک بخش, بخش خدا خدا. کوتاه ببینیم. برگردیم با جنبندی گفتگون با جنابه رایفی پور در خدمتون است قانون افاف و هجاب موضوعی که همچنان نقع اجرای آن مورد اعتراض نمهندگان مجلس است و این بار به دلیل اجرای ناقص این قانون وزیر کشور با 135 رای مخالف از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفت حالا نحوه اجرای این قانون میره از مسئولان با اعتراض مردم هم مباجه هست امروز متاسفانه با توجه فصل گرما ما هجاب مناسبی رو درستت شهر نمیبینیم از خانواده ها و یا خانوم یا حتی آقایونی که مثلا با اون لباس های مبتزل درستت شهر تردد میکنن لذا این می طلب که یک فکر اساسی بشه که حالا در قالب پوشاکی که هم بتونن دارن و هم پوشش اسلامی رو رعایت بکنن یه تدبیری اندیش بشه بیتونن این وضعیت رو دگرگون بکنن این وضعیت در این حالتی که هستش در بیادش حالا حجاب معلم بیشتر تولید کننده ها اون لباس های سنتیه ما رو تولید نمی‌کنن یا لباس هایی که بود الان مانتو هایی که هست کل شهر رو می‌گردیم به یه مانتو مناسب پیدا کنیم از نظر من یا ذره تولیه کننده ها یا یعنی نمیدونم مسئولین بکنم کوتاهی میکنن. با توجه من اینکه جامعه ما یک جامعه اسلامی هستش و معیارهامون معیارهایی هستش که باید مطابق قوانین اسلامی باشه و اون چیزی که دینمون حکم کرده خواهران و کنم که قشر زنان ما باید به این نکته توجه کنن که وظیفه برگی بر نهاده شده. میگن رادیو تلویزیون یا وزارت اصلا نیست. واقعا نیست. چون من عید اینقدر گشتم نتونستم خرید کنم و الان اومدم بتونم خرید کنم. هرچند به گفته مردم شرایط هجاب در کشور در وضعیت نامناسب قرار دارد. اما عدم نظارت بر تولید کننده ها و عرض کننده های بی تاثیر بر وضعیت موجود نیست. هر سال فصل تابستان کانون توجه به مسئله هجاب است و پس از آن این موضوع فراموش می شود تا همچنان این سوال در ذهن مردم باقی بموند که لباس مناسب خود را چگونه و از کجا تهیه کنم ترراحی که داریم یه لباس های مناسب با شونت اسلامی بیشتر تولید کنم من حقیقت هفته تیرو بازار اینجا هم گشتم منطور دنبال یه منطقه بلند ساده میخوام پیدا نکردم حالا با اینکه اینجا شنیده بودم مرکز خرید اسلامی اومدم بازم همه چا زیگه میخواستم همهز پیدا نکردم. صبح شما بخیر باشه قبل از خبرهای ساعت 8:3 من با جناب آقای رائفی رائفی پور گفتگو می‌کردم از کارشناسان فرهنگی از مدرسین دانشگاه یک بحث میشه گفتش که ریشه و تاریخی رویشون در مورد عفاف و مطرح کردند و تاکید بر این نکته که عفاف و حجاب مختص خانم ها نیست با آقایون هم مربوط میشه در چند دقیقه که در این بخش از برنامه فرصت داریم که البته همینجج از آقای پور باید قول بگیریم که بازم خدمتتون باشیم جمع بندی بحثمون رو خدمتون باشم به صورت خیلی کوتاه و مختصر. خب من خدمت شما عرض بکنم که من یه نکته رو خوب باز بکنم این وقت شبهی تو ذهن بینندگان عزیز ننشینه. این که مراد بنده از اینکه دارم شعن زن و مرد رو تعریف می‌کنم وقت تو ذهن کسی ننشینه که مثلا پکار کار خانم شو تو خونه نشاستن. نخیر. این تعریف اصلا تعریفی از سر شیطنته. تو خونه نشستن از سر شیطن. تو گفتیم اصلا قراره تو خونه بشینه خب هر کار دوست داره هر تفریحی که علاقه داره الان خیلی از خانم هایی که شاغل هستن خیلی از تفریحی که میخوان انجام بدن شغلشون جلویشون میگیره خیلی از مسافرتو دوست دارن برن خیلی دوست دارن چه میدونم خونه کسی برن سر بزنن هر کاری که حالا خانه‌داری مدنجا... اون تصوری که بعضی‌ها دارن بله اصلا, دارن بله، اصلا. برعکس با اومدن تکنولوژی امروز خیلی راحت‌تر شده امروز خیلی راحت‌تر شده. حالا نمیخواد دیگه برینم یخ بشکنم، آب ورداره بیارم، نمی‌دونم خودش تو تنور نون بپزه و نه اینا واقعا ساده شده. فرصت بسیار برادرم برعکس ما امروز باید انتظار داشته باشیم هایی که تو خونه تربیت میشن بسیار با تربیت تر باشن چون مادر ترسه وقت بسیار بیشتری براشون بذاره. خدا از زن خاص من روی زمین باش آدم بسازه. به قول ویلدونارد حرفی قشنگی میزنه. میگه در دوره ای که اقتصاد در اروپا قدرت گرفت و ما نیاز به نیروی کار زن داشتیم به خانم ها اومدیم گفتیم که کار خونه نکن بیا تو کار خونه کار کن حالا او هم, هم بیلدولانت هم بد میگه باز لفظ کار خونه رو استفاده می‌کنه. شما میدید تو منابع اسلامی مرد باید بر زنش کنیز بگیره زن بابت شیر دادن به بچهش میتونه پول بگیره بشینه تو خونه نفقه بگیره اصلا ببینید وقتی ما اگر میبینید شیر میدهد و پول نمیگیرد قضا میپذد و پول نمیگیرد این به خاطر همونی که محل تجلی صفات خدا رحمت بودن خود رحیم بودن خداست یعنی ایک زن دوست نداره میگه و همسرام به مشکل مالی مندازم خب پولم خواهم بگم برای چی؟ این که میشه مادر نماد فداکاری ایثار و همون چیزی که ما از تو صفات جمال از خدا میخوایم این پس نکته باید حتماً بسته میشد همون کمان که, که ارز کردم که توی الان توی برقی کشور اروپایی مثلا در امریکا و قر... ارزمی که قربید علال خصوص در امریکا خانمهایی که وقت آزاد دارن یعنی شاقل نیستن دیگه لفت خاندار استفاده نکنیم خوب و تو خونه هم هستن خدمت شما ارز بکنم که پوز میدن افتخار میکنن فالازم من بخوام نکاتم رو جنبندی بکنم این میشه که اگر ما میخواییم هجاب رو تعریف بکنیم اولا هجاب رو در کلمه پیش از اون افت ببینیم و افت در پوشش شد هجاب این یک نکته نکته دیگه اصلا هجاب مختص فکر نکنیم به اسلام برکس اسلام راحت تر گرفت حالا من جلسات بعدی اگر قرار بشه خدمت شما باشم تصاویر از هجاب یهودیان، هجاب مسیحیان میارم تا ببینن که آقا مثلا یک زن یهودی ارتودکس چه حجابی داشته باشه که هجاب یک زن مسلمان اسلام مثلا آزادی عمله بیشتر دار اسلام برای راحت کردن احکام و قوانین آمد هجاب زن زرتشتی اصلا چادر کلمه والا بللا فارسیه هر چیزی که ما رو بپوشونه ما تو بیرون هم که میریم برای اینکه از باد و بارون و آفتاب در امان باشه میریم توی چادر. خب تا جایی که همونطور که با حضرت الیشم صحبت میکریم قبل اینکه برنامه شروع بشه فرمودین نکته که بله ویلدورانت گفته بله ویلدورانت اصلا تا اینجا که ویلدورانت قائل بر اینه که هجاب از اسلام از ایران به اسلام رفته. و چون من رو اسلام اسلامی نمی‌دونه مسلط نیست اشتباه میکنه اینطور نیست. خب اما اینکه ما هم داشتیم قبل از اسلام این که در میان یهودیها بود در مسی هم د بودیست ها حتی دیده شده. خب اینشون دهندنی این این که اصلا یک اقلانیت بشری به این رسید. منم چرا؟ جایی که بر میخواد خدمتی شما از اون چیزی که مد نظر خودشه بر میه چهار هزار سال پیش بیرون میکش. چهار هزار سال پیشم انسانها این کار را میکردن فضا به این نتییه رسیده بودن تجربا پدر علم چهار ه سال فکر کردن آزمون و خا پیشرفتن به این رسیدن ما بعد از این اندیشه استفاده بکنیم جایی که خلاف آن چیزی که میخوان باشه به اون سمتی که دلشون بخواد سغ میدن و میبرن شما سریالی که تاریخ 100 سال پیشه دروننشو میده سریال تلویزیون خودمونشون میده مثلا پزشک دهکده و نمیدونم اینها شما نگاه بکنید خانم‌ها میبینید از گردن تا نوک پا پوشیدن هر اتفاقی افتاد تو همین 100 سال بود علیرخصوص تو 50 سال اخیر رسانه اومد وسط یک موزه اصلا یک جلسه ویژه میشه که نقش رسانه‌های صهیونیستی در اشاعه بی افتی بی و بی هجابی و نکته آخر هم این که خدمت شما عرض بکنم بله همونطور که عرض کردم اصلا هجاب فقط خانم ها نیست یعنی افت فقط خانم ها نیستش. مردها هم باید هیا داشته باشن مردها هم باید افیف باشن امروز ما تو جامعه متاسفانه تو کوچه بازار داریم را میریم یا بینیم دو نفر با هم دعواشون شده دوتا آقا تصادف کردن حرفای رکیکی بر زبان میارن که هیچگاه شما در تصادفی که دو تا خانم اگه با هم دیگه کرده باشن نمیشنوید. ببینید توی عفّت کلام جمعی این ها بسیار دقیقتر بهتر و افیفتر هستن از آقایون. ما بیایم این خورده ریشه ها رو حل بکنیم. اگر میخوایم امروز یه نتیجه بگیریم، یک بریم بشین به منابع درسیم و آموزشمون یک بار دیگه فکر کنیم و دقت کنیم. ببینیم چی به خورده بچه‌هامون دادیم که امروز چی دارن پس میدن. دو بیاییم اون نگاه عمیق اسلامی و ایرانی که داریم نسبت مسئله پوشش و حیا زن چون سالها 3000 هزار سال تو این کشور مسبوغا به سابق است بیایم اینها رو دوباره تبییر کنیم سه اینکه به زنمون ارزش بدیم و بهش بگیم که ای خانم شما شعون بسیار بالاتر از این دارید که جلوگری بکنید برای جلوگری شما هم دیده شده منطور داخل چارچوب برای افراد خاص، برای فرد خاص دیده شده، منظورم برای فرد خاص دیده شده، نه اینکه خدمت شما عرض بکنم خونه بشه، محل دعوا، جلبه‌گری بشه تو کوچه برای مرد غریبه. خیلی متشکرم، ممنون جناب آقای رایفی پور از صحبت‌های بسیار جامع و کامل و جنبندیه بسیار خوبی که در آخر هم داشتین از توجه شما بینندگان عزیز ممنونم.